بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والاه وصحبه اجمعين ما بعد قال افادك فائدتين المسائل اللي كناي دوتا فائده براداره الاولى الفرح بفضل الله وبرحمته اولي خوشحال باش خوشحال باش بانك تو را موحد قرار دات تو را راه راه پیغمبران قرار دات اولي انكه خوشحال باش وخشبين باش به خداوند اولین اینه اولین مجده اینه اینکه تو ره راه پیانبرانی و خدا نوشته بر اینکه که پیانبران رو خدا نجات بده و جاشون بهشت خدا بشه و این راه رستگاریه این راه راه رستگاریه راه پیانبران گرفتن. قل فبی الله و برحمتی فبذالک فلیفرحو ال آیه و افادک ایضا الخوف العظیم ترس نه ترس مجرد ترسی که انسان از حیبون داره از گرگی ببری از نه؟ ترس از عذاب جاویدانه خداوند اینکه انسان خالد و مخلد در جهنم بشه این ترس الخوف العظیم خوف بزرگ و اون خوف عظیمی که قلب مؤمن را به تکون در بیاره انسان بلرزه انسان سر به سجده بکنه آیه از عذاب بشنبه بترس از اینکه که خداوند عقوبتش بکنه و چون سیره الله صلی الله علیه و اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین و شنیدی، صلی الله علیه بر سر نماز، همچون ای که آب توشه قلقل میکنه، رسول الله صلی الله و صدای قلقل اون اشکش اون وقتی که بحث از میشد، میشنیدن از الله صلی الله علیه و جهنم نبود مگر اینکه رسول الله صلی الله علیه به خداوند پناه میبردن از جهنم. رسول خداست بهترین بشره ولی از عذاب خداوند میترسه. اش میریزه بر سر نماز به خاطر خوفي که از خدا داره. از عذاب خداوند میترسه. میدونه که عذاب خدا حقه. میدونه که عذاب خداوند حقه. الگوی هست رسول الله صلی الله علیه و آله لقد کان لکم فی حال و بحال خودمون مراجعه بکنیم، بکنیم. چقدر خوف از خدا داریم ترس از خدا داریم چقدر خشوع داریم در سر نماز چرا، چرا، چقدر وقتی که بحث از عذاب جهنم میشه چقدر وقتی که بحث از غیر المغضوب علیهم ولد دالین میشه وقتی که اون آمی میگیم چقدر از سه قلبه چقدر میترسیم از خشب خدا که مغضوب علیهم بشیم بشیم یهود که با دانایی و علم گمراه شدن میدونستن و عنادت ورزیدن چقدر میترسیم از اینکه مثل نصارا گمراه بشیم از جهل، از نادانی، اونا از دانایی و اینها از نادانی گمراه شدن، دوچار خشم خدا شدن، ما به خدا پناه ببریم از اینکه از جمله این اشخاص باشیم، اینهایی اینها ای که از داناییشون گمراه شدن و اونهایی که از نادانیشون گمراه شدن، اینا خیلی مسائل مهمیه که انسان باید بترسه، خوف و وجل در قلبش بیاد، وادت انم به حسابات قلبش به تکون در بیاد نگاه کن چرا پیامبر خدا به خودت بگو چرا پیانبر خدا صلی الله علیه و با اون مقامش با اون شرفش با اون وعده های الهی با اون مقامی که خداوند که خداوند بهش داده چرا وقتی که اسم از عذاب میاد اسم از جهنم میاد قلبش در صد درصد نماد به تکون در میاد چرا ما به تکون در نمیاد به خاطر این که حق خدا قدر خدا را اونطور طور که شایسته به جا نمی و ما قدر الله حق قدر بندگان قدر خدا را به جا نیووردن عظمت خدا را به جا نیووردن اگر عظمت خدا را به جا میووردن بندگان خدا سینه را در بقابل این توحید و حق خدا سینه هاشون را سپر میکردن همونطور که امتهای پیشین وقتی که یک شخص بر توحیدش استوار بود با عره میووردن از وسط نصفش میکردن ولی از ایمانش بر نمیگشت ابراهین خلیل الرحمن را در آتش انداختن ا این حق توحیده که انسان اگر بدونه باید اینچنین استقامت بکنه این اینچنین در راه خدا زحمت بکشه تلاش بکنه مبارزه بکنه با شرک با بدعت با معصیت خداوند با هر گونه نافرمانی از دستورات خداوند این توحیده این حق توحیده چقدر ما به این توحید احساس مسئولیت کردیم و به این توحید دعوت دادیم و روشمون روش پیانبران خداوند بود اینها مثال این اینها قصه و عبرته اینها درس است اینها همش درسه خدا در قران وقتی قصه موسی و عذابی که فرعون بر سر بنی اسرائیل وارد میکرد اینها را خداوند به بان عنوان یک قصه شبانه که ما بخوابیم خوابم بری نبود اینها و درس بود اینها و درس بود برای اونهایی که پنتغیرا عبرت پذیرن نه به اونهایی که گوششون رو میبندن و گذرا از این قرآن و از این ها رد میشن ولی بقتل ابناءهم و از رححگی ننس فرعان بود انسان بیرحمی بود. میکش و چرا میکش؟ زن و مرد رو میکش. آدم بیرحمی بود تا اینکه مردم او را بپرسند. تا اینکه مردم وارد شرک بشن. انسانی را بفرستن از خدای خود غافل بشن لی که موسا اومد استقامت کرد. موسا اومد نبرد نبرد است با این فکر با این تفکرات جنگید باید انسان چین باشه. همبران اول العزم اگر مثال‌ها خداوند راش رو میزنه به خاطر اینه که ما رهرو و راه اونها الک الذین هد الله اونها هدایت شدن و به و مقتدی پس راه اونها هدایت اونها و راه اونها را بگیره پس ما باید از طرفی خوشحال باشیم از طرفی هم باید بترسیم قلبمون به تکان در بیاد که اگر کوتاهی بکنیم در جناب توحید در مقام توحید اگر کوتاهی بکنیم بدونیم که خداوند است که در روز قیامت وقتی که در سور دمیره میشه آسمون ها و زمین به تکان در میاد و خداوند فریاد و صدا میزند خداوند اونجا صدا میزنه و میگوید لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن اليوم لله الواحد القهار اون وقتی هست که خداوند میگه میگوید این ملک از ما از آن من واحد قهار است وقتی که این صفت قهار رو مشنی باید قلب متکون در بیاد خداوند صاحب قهر همه ملکوتش را جلوش حاضر می کند. حاضر و ناظران و اون روزم خداوند خشمی ورزیده رسول خدا صلی الله علیه وسلم سلم میفرماید که هیچ وقت چنان خشمی را نبرزیده خشمی را ورزیدن خداوند در اون روز روز محشر که چنان خشمی خدا نداشته لمل ال ملک کل یوم لله الواحد القهار خداوند صاحب قهر صاحب غلبه است همه مغلطو همه همي مقهوري همي بندقان خدائي ببعض حق بندقي خداره أدوبك قال و أفادك إضن الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يُعذر بالجهي قد قد احتماله شايد يكي أزمار كلمي كفرير بقيه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا یهوی بها في جهنم 70 خليفه كما قال صلى الله عليه وسلم یک شخص سخنی را رامیگه اون سخن شاید کفر باشه شاید شرک باشه شاید بدعت باشه شاید معصیت باشه با اون کلمه افطات سال به جهنم میفته یک کلمه یک کلمه انسان را جهنمی میکنه و شاید انسان با اون کلمه معذور نشه و خالد مخلد در جهنم بشه شاید با اون کلمه انسان معذور شاید به احتمال جای جهل انسان پذیرفته میشه جای جهل انسان پذیرفته نمیشه جای علم هست پیانبر خدا هست پیانبر خدا هست اون مشرکی که در کنار پیامبر نمیخواد دین پیانبر رو یاد بگیره دینش دیگه پذیرفته نمیشه یهودی که در مدینه بودن میدونن پیانبر بر حقه ایمان نمیوردن پذیرفته نمیشه ازشون ما یسمعو بمی یهودی ولا نصاری ولا یؤمنو بی الا کان من اصحاب النار چون نمیدونن اعراض کیان این جهل و تجاهل و کوتاهی در مقابل حقیات گرفتن انسان معذور نیست. یک سری جه هست که جهل انسان در مقابلش معذوره. توانایش نمی رده، اقلش نمی کشه. کشش نداره، کسی نیست یادش بده. مثل اصحاب فتره بین پیانبه صلی اللہ علیه وسلم و بین عیسی بودن علیه السلام، کسی نبود منوها بگه و همچنین همون چهار نفری که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایان در روز قیامت دوباره امتحان میشن بچه‌ای که در خردسالی از دنیا می‌میره دیوانه‌ای که به قول معروف وقتی که وقتی که از وقتی که بوده دیوونه بوده و در میان مسلمانان زندگی کرده اون پیر پیرمرده که هنصالی که خرفتش زده و اسلام بهش رسیده و چیزی نمی‌دونهس عقلش نمی‌کشیده اینا هستن که و اهل فتره که نرسیده چیزی از دعوت حق بهشون اینا بله محذورات چون معرض نبودن و دوباره بلی امتحان میشبن در روز قیامات اینها انواع قیمم به های مسئله در طریق الهجرتين اشارم میکنه به انواع جهل بيگت احدهما لعراض عن الحج و عدم ارادة العلم بها و بموجیبه ها یک شخص اعراض بکنه كلان نیاد که دین رو یاد بگیره این جهل نوع اول دومی الثاني العناد لها بعد قيامها وترك اراده موجيبها فالاول كفر اعراض والثاني كفر عناد وام كفر الجهل مع عدم قيام الحجه وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل كفر اعراض خالد مخلد درجه كفر عناد خالد مخلد في مثل ابليس كفر الجهل كفي الجهل دار كف بيوفته إنها هذا که دوباره روز قیامت امتحان میشن امام ابن تیمیه رحمه الله مثالی میزنه در فتواش به این گفت مثالی میزنه مثال مثال اون شخصی که که رسول الله صلی الله علیه و حدیث از صحیحین که رسول الله صلی الله علیه و وسلم میفرمایند شخصی روز در روز قیامت خداوند مبعوث میکنه و میگوید اون شخص گفته بود بعد از حیات من منو تیکه تکه بکنید آتش بزنید چند قسمت بکنید قسمتی در هوا و قسمتی در دریا و بیابان پراکنده کنید شاید خدا نتونه من رو مبعوث کنه خداوند روز قیامت مبعوثش میکنه این شخص میگوید چرا چرا خداوند میگه که این چنین حرفی زدی فکر کردی من نمیتونم تو رو مبعوث کنم چون شک کردی بود در قدرت الهی بعد می گفتم شاید منو مبعوث نکنید بعد اون شخص خدایان با وجودی که کفر در قدرت خدا داشت، او کفر در بعث روز قیامت داشت. خداوند میگه او را بخشید. میگه تو لک. تو را بخشیدم. سپس دستور میده او را وارد بهش کنند. امام متقی رحم الله میگه این اشخاصی که در میون ما هستند، جاهلان، نمیتونن درد و فهم ندارن، نمیتونن حقایق را بفهمند، این اشخاص قبل از قیام حجت و بیان محجت تفیر نمیشن. خاطر همین میگید لا يجوز الاقدام علیه يعني بتكفير تكفير المعين وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وامثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية حجة الرسالية ما زل أدلية القرآن والصنات أصبح يا إلهي اتمام إتمام بشي قفتي بشي. التي يتبين بها أنهم مخالفون الرسل وإن كانت هذه المقالة لا ريب فيها أن كفر یعنی اون حرفی که میزنن شکی در کفودنش نیست ولی باید امبوات حجات بشه قبل از اثم بحجت محقه تکفیر نداره ما, ما قبلا در بحث تکفیر این مسئله رو بیان کردیم حتی خود محمد وهاب حتی خود محمد وهاب جاهایی که بهش نسبت میدن به اینکه تکفیر میکنه خودش متبرئ میکنه و میگه من کسی را تکفیر نمیکنم مگر اون کسی که الله و رسولش را تکفیر کرده من اون کسی که کنار قبر بدوی میره ذبح قربانی میکنه و تبرک میجویه به ذریحه اون قبر بدوی در مصر منو ان شخص التكفير نميكون ميگول اما الكذب والبهتان فمثل قولهم اننا نكفر بالعموم تو انكم گيوا اذا كنا لا نكفر من عبد الصنام الذي على قبر عبد القادر مندوزريشاهس اللي بالقبر عبد القادر گيلاني حس والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثاله ما هناك من انذريها تبرك بيه يعني ميگي ما انهار تكفير نكون نميكون لاجل جهلهم بخاطر جهلهم وعدم من ينبههم بخاطر ان كسي نيس انهار تنبيه بده انهار بقول معروف حشدار بده چون كسي نبوده كاعدل ربا إن هاء شكار بكنا لأجل جهلهم وعداء من ينبيهم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا شكراً لكم في أسماء تفير كثير بصولي كثيراً كفر كثير كثير فحكم كفر إشجران لماذا يكون هناك هارف المحب دوهابه وابن تيمية دار بحث عذر بالجاهل حتى عمي ما قبلش إمام الشافيه رحمه الله هم همينهم يقول دار بوري بحث الكفر دار أسماء الصفات كم يقولون فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل قبل انکه شخصی اتمام حجت بشه اون شخص معذور به جهل این گفته چه متباتلا در بین ائمه بعضی ها سخن بعضی از علما را میخونن بعد نمیفهمن درست نمیفهمن جمع نمیبندن تشویر میکنن بعد میان ازت سوال میپرسن حکم ذبایح کفار چیه منظورش چیه منظور کسانی که قبر را قبول دارن توسل به مردگان را قبول دارن حکم خوردن ذبایحشون چیه خب این حکم حکم خوردن غذای اونها برمیگرده به چی؟ برمیگرده که آیا ما اونها رو تکفیر میکنیم و نمی کسانی از علما بودن مثل شیخ بن باز که کسانی که از اونهایی که اعتقاد به مرده و قبر داشتن در میان خودشون میگه میان ما زندگی میکنن اینا کافرن. اما کسانی که میان ما نیستن دعوت ما بهشون نرسیده اونا معذور به جهلند. این یه قول از اقوال ائمه است. به خاطر همین شیخ فوزا میگه در این مسئله اختلافه. در این مساله در تکفیر جاهل اختلافه. اینطوری نیست. که محل اتفاق بین ائمه هر جاهلی رو تفسیر بکنیم هر کسی که دچار کفری شد شرکی شد تو تفسیر بکنی خصوصا سخن امامت و امام شافعی رحم الله و خدام حافظوها بر ما اینجا داریم یعنی اگر کمی انسان با دقت بره گفته های ائمه رو بخونه اینجا مثلا کتاب کشف شبهات اشرح کشف شبهات این کتابی که ما میخونیم خب شیخ فوزان خدا حفظش بکنه خدا نگهدار و حافظش باشه بالاخره از علما اهل سنت هم اینجا میاد خب در اینجا در همین مسئله بحث جهل که بحثش میکنه میاد میگه یعنی میگه در این مسئله در مسئله جهل باید تقلیز بشه باید با شدت برخورد کرد نباید به سادگی از مقابلش رد شد تا مردم نیان این مسئله رو به قول معروف راحت بگیرن و به سادگی در مقابلش رد بشد بدر مقابل یادگرفتنش کوتاهی کنن وقتی که در صفحه 104 میگوید الشرط الاول أن يكون قال هذا الكلام عن جهلا ولا متعمد ده بحث تفسیر بحث تفسیر رو میکنه و بعض الصحابه معني فهو لا يكفر بذلك لكن بهذا هذين الشرطين الشرط الاول شخص متعمد نباشه جاهل باشه متعمد نباشه چون اگر جاهل باشه از این سخن چه برداشت می‌کنین اگر جاهل معذوره یعنی تکفیر وقتی میشه که شخص از عمد اون حرف رو بزنه از جهل الشرط الثاني ان يتوب من ساعته ويترك هذا الشيء اذا تبين انه كفر انکه شخص توبه بکنه مثلا ناگین حسین میادش انشاءالله در ادامه بحث در بحث اونجایی که صاحبه دار جنج حنين بحث كدراخت متبركي ذات أنوات رديداً قفتاً اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يونون جاء اقرار كاداً توبه كاداً بعد ذات اتمام حجات بحث شيخيني اگر شخص اتمام حجات شوط ان جاهل يؤد داد دي شوط ديك توبه بكنا داس بك شو نينك دقي معاندات بفرز, بفرز والفائدة الثانية تفيد هذه القصة ان من لم يكفر بكلمة الكوف إذا قالها جهلاً فإنه لا يتساهل معه بل يغلب عليه کسی که کلمه یک رو میگه جاهله نباید با نرمی میگه ورخورد کردن یعنی مخ... يعني... مثلا خصوصا در در مباحثی که درش کلمه کفر مده مثل ترک ترک تارك نماز بین رجل و بین الشركه ترک الصلاه فمن ترك فقط كفر و اشرا او كما قال صلى الله عليه وسلم ترک نماز كفره امام احمد رحمها الله میگه نگید کی یا کفر یا شرکش ازغره یا اکبره چرا با غلظتش باقی میمونه شخص نه اکتوهی بکنه در نماز خوندن نگید اینجا از کسالت اینجا نمیدونم از عمده اینجا همین نگید تمائم شرک ازغره شرک اکبر به عوام نفى الله علما بحث عظمه نگیر تا مردم کوتاهی نکنن به شوخی نگیرن نگیر رفتن پیش جادوگر شرک اعظم شرک اکبره چون مردم اگر بدونن چون مردم اگر بفهمن که اینها کفر اکبر نیست یا معجزه بلنی نیست کوتاهی میکنن هر که این انواع از سماهم از تعاویز منجرزه به شرک اکبر هم میشوند حالا ان شاء الله به وقتش مسائل با داده بشه جاش نیست خب یک برو به کلمتی یخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يُعذر بالجهل وقد يقولها شوية وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما أن الكفار خصوصا إن ألهمه الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصه من هذا وأمثاله هي بقتك يكشح في كفر مية الا متبر تب... از باب تبرع یا از باب دیدونم استقاسه از باب ندا زدن و صدا زدن اون کلمه را میگه کلمه کفر فکر میکنه با این کلمه به خدا نزدیک میشه این کلمه با اون کلمه کفر گفتم فکر میکنه به خدا نزدیک بشه همونطور که حال کفاره و من اعبدهم ما نعبدهم الا ليقربونا الاله ذلفا از باب تقرب که به خدا یقربون الاله از مام تقرب انجام می که به خدا نزدیک بشن حال مشرکین این بود و حال بنی اسرائیل هم همین بود میگه. حال بنی اسرائیل هم همین بود که خداون بعد از اون منت ها بعد از اون نجاتی که به اونها داد از دست فرعون بعد از اون امتحان هایی که خداوند بر سر فرعون نازل کرد از اون ها و از اون نمی‌دونم از عذاب‌هایی که برداشتش شد با دعای موسی اون سالیان سال زیر قهر و جبروت فرعون بودن این پیانبر خدا برای نجاتشون فرستاد جلوه چشمشون معجزه موسی را می‌بینن از اون جلوه جادوگران که اجتها میشه عصای موسی از این دریایی که شکاف برمی داره باز میشه تا موسی نجات بیابه جلوه چشم خودشون آقبت معاندی را میبینن میبینن آل فرعون و فرعانیان غرق شدن با این وجود همین که نجات یافتن در رخا و خوشی افتادن دیدم اقوامی کنار درختی به اون درخت متبرک میشن. از موسی تقاضایی میکنن ای موسی برای ما این درخت متبرکی قرار بده بهش تبرک بجوییم تا به خدا نزدیک بشیم از باب تقرم به خدا نزدیک بشیم خدابن از این تقاضای قوم موسا چی یاد کرد؟ اجعل لنا الهن کمالهم آلهه اجعل لنا الهن معبود اینا خواستم به خدا نزدیک بشن درختی خدا براشو قرار بده که بهش تبرک بجوین اسم این فعل تبرک جسر را خدا چی نام گذاش اسمش را اله قرار داد اله ما گفتیم ال اله بروزد فعال به معلوح مثل امان به معنی که که یعنی معبود. इलाह यानी मबूद अल्लाह मद इलाह گرفته شده ما گفتیم اله کسی که قلب متالهش شیفتهش از خوف و تعظیم و محبت او را میپرسته سر به سجده اش میذاره این اله است همین من مثال زدم اگه یادتون هست یادتون باشه من مثال زدم بهتون گفتم خداوند در سوره فاتحه وقتی که شروع کرد گفت الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین گفت الحمدلله لله, لله اول الحمد لله لله الاله ہے اَذَل الہ اور اوورد بر رب وورد یعنی می بین رب و بین الہ الہ کسی کی خاصیت الوہیت و عبودیت رو داره و رب اون کسی خاصی... کی خاصیت خلقت و آفرینش رو داره یکی قسمت علم ما نسبت به خداست نسبت به عمل ما نسبت به خداست الحمدللہ اللہ معبود ہے اون کسی کی کہ ما او با فعل خودمون و رب العالمین کسی که ما خو... او را تعظیم میکنیم با علممون یکی علم یکی عمله اله مالوه معبوده با سجده با عبادت و رب العالمین با تعظیم با اثماسفاتش با یاد از آفرینشش نا کنید غیر ممکنه که کلام خدا در اشتقرار باشه غیر ممکنه که اینجا معنای ربوبیت معنای الوهیت داشته باشه به خاطر همین تفسیر تبری رو بخونید هر جا از این تفسیر را ورق می‌زنید بخشی از الوهیت می‌کنه اگر اله بیاد و بحثی از ربوبیت میکنه میگه الوهه و جای میگه الوهیه به شرک کلمیه الوهامیه هم کلمیه الوهیت بعضیا میگن این اختراع ابن تیمیه هست یا محمد وهاب خیر شما برید تفسیر طب تب مبیری ورق بزنید ببینید بيش سجا كلمه الوهيه وربوبيه رو بكار ميذره ني كه ما متبري حتى خود امام ابو حنيفه رحمه الله ميگه والله يدعى من اعلى لا من اسفل والله يدعى من اعلى لا من اسفل لان الاسفل ليس من وصف الربوبيه والالهيه في شيء خدا از بالا صدا زده خدا بالای عرش يعني چنان امام ابن بطه باسر درست صحيح حق از امام ابو حنيفه همچنین شوگردان امام ابو حنيفه خدا از بالا صدا زده ميشه چون پایین بودن ذلت خاریه پستیه وصف روبیت و تعظیم و خدایی توش نیست پایین بودن همه جا بودن وصف خدایی توش نیست متعالی بودن خدا توش نیست علوم و خدا منزه بودن خدا از مخلوق توش نیست فا این الاسفلان لیسه من وصف روبیتی و الالوهییت فیشهی نه وصفه روبیت توشه نه وصفه الالوهیت نه معبوده که پاروش میداریم چه خدایی که ما داریم پاروش می داریم. سروش ادعار میکنه میگه میشه خدا پایین باشه اون چیزی که پایین زیر پاشه لهج میکنه بفرسه نمیشه خدا پایین باشه نام از وصف عظمت توشه وصف عظمتم توش نیست خدایی که پایینه اون کسی که خدا را اعتقاد داره بالای هرشه رسول ما میره معراج جایی که با خدا ملاقات بکنه اونجا پرده ای بینشه بین مخلوقات و بین خدا بین خداوند زیر اون پرده با خدا حرف میزنه میگه ابن نورش بر اساس میگه نور حجاب و نور. لو صبحات وجهه الاحرقت مد بصرهمه من خلخ یک حجاب از نور اونجا بود اگر یک شعاع از نور وجه خدا از اون عبور بکنه کل مخلوقاتش نابود میشه کل مخلوقات خدا این عظمت این تعظیمه حالا بعدش ان الله به این قضیه اشاره و این قضیه ربوبیت و الوهیت گفتم نه ده تنها در سخنان این ائمه بلکه در در سخنان تمامه ائمه اگر شما برید ورق بزنید مییابید خصوصا در تفاسیر ابن كثير و خبتی ببنه تیمی نداره حالا انشاءالله گفتم دوباره این مسئله دوباره بهش برخواهیم گشت در بحث شبهات و اینا پس اینجا بنو اسرائیل تقاضای معبود رو کردن نه تقاضای خالق اونا رو خدا را رو... خوب می شاختن اونا شرک در روبوبیت نیوردن شرک در اطماسفات نیوردن اونا خداوند را بنوان خالق یکتا قبول داشتن اونا مشرک نبودن، اونا خدا را قبول داشتن در ربوبیت مشرک نبودن. اینجا تقاضای شر رو کرده ولی شر انجام هم ندادن. موسی خشگی میشه اونجا. به خاطر همین خداون از این تقاضای قوم موسی اینجوری یاد میکنه. اونها تقاضای خدا را کردن این معبود کرده، بس اینجا معبوده نه معنی خالق چون خالق رو اونا قبول داشتن. و همین چین این چیزی در جنگ خندق گفت پیشومت که بازم دوباره خواهد آمد. اینجا هم باید بگیم این قضیه قوم موسی را رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث ذات الانواس یاد میکنه که در حیث صحیح آمده وقتی که در جنگ خنین بودن صحابه درخت متبرکه رو مثل قوم موسی دی دیدن گفتن خدای این درخت متبرکه ای برای ما قرار بده که شمشیرامون از گوه تبروک بش آویز کنیم به لباسامون قال والله لقد سالتموني كما سال بن اسرائيل موسى اجعل لنا الهن كما لهم اله وداروات انها السنن انها سنت ومتای پیشینه چیزی که قوم موسی از موسی شما از من میخواید که برای شما خدایی را معبودی را قرار بدم همونطوری که اونها معبودی دارند اینها تقاضا کردند مجرد تقاضا بود و اونجا بود که خودشانم میگه عذر خود میگه ما حدیث العهد به کف بود تازه از کفر به اسلام شده بود و عملم نکردن و این اینم رسول الله صلی الله علیه و سخت با اونها وارد میشه اینجا هست که میگه که در مسائل توشید شوخی نگیریم آسون نگیریم سخت بگیم سخت بگیریم با طرز داشته باشی طرز داشته باشیم خوف میخواد نه اینکه ما مرجعه باشیم همش بارجا خدا غفور رحیمه خدا میبخشه ما متاسفانه بیشتر مردم ما الان مرجئان مرجئان یعنی که عمل رو از ایمان تأخیر میدن عمل را جز ایمان نمی شمارن هر کاری دلشون خواست انجام میدن هر گناهی انجام میدن بعد میگه خدا غفور رحیمه فراموش کردن که خدا شدید شدیدل شدید شدیدل عذابه اون عمل ناشایستشون رو نمیبینن که اون عملشون ایمانشون رو نقض میکنه ایمانشون رو کم میکنه یک کلمه هست یک کلمه شاید کل ایمان را ان رجل لا يتكلم بالکلمه لا یلقي لها بالا یلقى بها فی جهنم السبعین فرد یک کلمه انسان جهنمی میکنه یک کلمه مثلا شوخی نیست انسان باید بترسه و ترس از درش داشته باشه خصوصا ان الهمه الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم و علمهم گفتی ما مغضوب علیهما چرا بنی اسرائیل چون علم باشه چون با موسی بودند چون لمس میکردن شریعت خدا و اهل عبادت بودن فکر نکنید اونها اهل عبادت نبودن ما قبلا گفتیم حتی مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و اهل عبادت بودن صدقه میدادن زکات میدادن نمیدونم طواف خانه خدا میکردن نماز میخوندن دعا میکردن مشکلش کجا بود شرک در دعا مشکلش شرک در دعا بود شرک در دعای خداوند داشتن متوسل میشدن به اون معبوداتشون از مردگانشون از بتاشون اینها با این صلاحشون یعنی با این پرهیزگاری و عبادتشون و با این علمشون أنهم أتوه اجعل لنا الهن کما لهم آلهه اینها بن اسرائیل تربت شده زیر دست موسا و حارون دو تا پیانبر خدا هسته دارن امر نهیشو میکنن موسی علیه السلام توراتی که خدا با دست خیش نمیشه میاره براشون ولی با این وجود اینا عنادت میبرزن با این وجود اینا مخدوب علی خشم خدا واقعا برای چین اشخاصه انسان بدونه و اشتباه بره انسان بدونه دعوت انبیا توحید بده دعوت به توحید نده بگه نه این مسئله اختلافیه تفریقه اندازه تفریقه میندازه توحید تفرقه میندازه سبحان الله بله تفریقه میندازه بین اصحاب جهنم و اصحاب بهشت بله طریقا فریقا? حق عليهم و ضلالة باید گو فریقی گروهی گمراه بشن جهنمی بشن و گروهی بهشتی بشن بله فرق مندازه بین اصحاب جعیم و اصحاب بهشت بله فرق مندازه اما این که ما بیان بشینیم بگیم که نه این مسئله اختلافیه این مسئله تفرقانگیز این مسئله این مسئله ا� مسئله ا مسئله ا مسئله ا مسئله ما ما ب ما ب ا ا از ا از کشوری ما بحث دستام سیاسی نیست بحثمون دینیه ما وظیفه منتبین قرآن و سنته همین ما وظیفه‌مون که مردم از جهنم نجات بدیم میخواد تو فقر اونها رو زندگی... زندگیشون د... رو اونا رو وادار بکنید که در فقر زندگی بکنن در, ش... در شکنجه و آزار زندگی بکنن اون دیگه خودتون میدونی با خدای خودتون وظیفه ما دو اولین وظیفه ما نجات مردم از جهنم خداست این وظیفه اصلی دعوتگره اهل علم با دعوتست به توشید بدن. باطراهره به راه پیانبران خدا بشن. پیامبران خدا هیچ کدام سیاسی نبودن. پیانبران خدا اشخاص سیاسی دولت طلب سیاست طلب سیاست مدار سیاست مدار کرسی طلب کرسی خواه نبودن. نمیتوزنددن اسبشون را به سوی اینکه کشوری دولتی داشته باشن ابرقدرتی باشد. برای اینکه مردم را زیر سلطه خودشون را قرار بدن. ابراهیم سعی و تلاشش برای تشکیل یک دولتی کشور نبود. موسا علیه السلام سعی و تلاشش برای کشوری ایجاد بکنه نبود کدام یک از فیانبران خدابند سعی و تلاششون برای رسیدن به یک کشور بود یک دولت بود اومدن قانونمندی کردن اومدن راهسازی کردن خیامونسازی کردن هدفشون این بود مگه انتون اعلیم به امور دنیا کنم امر دنیا خودتون میدونین سیاست در امور دنیاست اما بحث ایمان و اعتقاد در امور دینه ما در امور دینمون در دعوت انبیامون داریم سخن میگیم اون راهی که پیانبران خدا داشتن به خاطر همین بعضا مغالطه میکنن در این با مغالطه میکنن که بله نه بودن پیانبرانی که در غیر توحید جنگیدن یا در غیر توحید دعوتشون بوده مثال لوت را میذارن. میگن نه اونها نو لوت علیه السلام قومش قوم لوت علیه السلام اون عمل مرد با مرد انجام میداد اونها لوت علیه السلام بخاطر اون فرستاده شد یک نوع از انواع شرکی که قوم لوت مرتکب شد شرک در ساعت بود اونها حاضر نبودن که بپذیرن این حرامه استحلال کرده بودن حرام خدا میگفتن حلاله با هر کسی خواستین با اون مهمانات این کار انجام بدین حلالش میدونستن عمل مرد را با مرد استحلال کرده بودن استحلالم هم کفری از انواع کفره کی گفته که دعوت لوت دعوت بسیع نبوده маганаи муджахе он شرке дар شرки ки дар досанд дар ҷониби ибодият ва дар тоъат лут алайҳиссалом бо онҳо мубориза мекунад шумо берид анвои ширкро بخунед бад биоед бигӯед ки даъвати нуҳ даъвати таوحид набуда даъвати тамомии пайғамбарон алайҳимус салату ва салом ас нуҳ гарифтае фаброҳим ва муса ва исо ҳамаш таوحид буда ҳамаш ба суи таوحид буда яъни ибодат аллаҳ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا انا فعبدون فعبدون تحبت بسيئة توحيد لا إله إلا انا فعبدون توحيد عبوديات و توحيد أولوهيات فحينا إذن يعظم وخوفه وقتك النجاة بقاوة من الإسرائيل ميكونة وعاقبة حالشون با أن علم السلاحشون ميبينك أنها مخزوب عليهم سدان ونجاه هذك فرهيز ميكونة ونجاه هذك مي ترسه أس أسباب كوف أس أسباب از این که جاهل بشه در شرق بيوفتمیل دنبال علم از این که همخوب و همسو بشه با اهل جهالت و اهل بدعت و اهل کفر و شرق شاید آلودی بشه با اون شرق شاید شبههی در قلبش بیوفت کنن و بشه مثل اونها سبحانك الله بحمده بصلا الله محمده وعالی محمده